فردای همان روز عصر عاشق خیرسر گام دیگری در جهت آزمودن دنیای بیرون برداشت و این بار با بیشترین توفیق ممکن بدین معنی که در میدان مارکوس وارد آژانس مسافرتی انگلیسی شد که آنجا قرار دارد و پس از آنکه مقداری پول تبدیل کرد با غیافه یک خارجی مزنون به اوزا رو کرد به کارمند آژانس و پرسش دهشتناکش را تکراب کرد. کارمند انگلیسی بود با لباس پشمی که هنوز سن و سالی از او نگذشته بود. با فرقی در میان سرگشوده چشمانی نزدیک هم و آرامش و قراری که با پای بندی به قانون همراه است و در دنیای پرت حکن ای رنگ جنوب چنان غریب و شگفتانگیز مینمماند او بنا کرد که دلیل برای نگرانی وجود ندارد سر یک اقدام بدون معنی خاص چنین دستورهایی اغلب صادر می شود تا از عواقب و زیانهای گرما و اسکیروکو برای سلامت مردم پیشگیری شود ولی سرش را که بلند کرد نگاه چشمان آبیش به نگاه آن بیگانه افتاد آن نگاه خسته و اندکی اندوهناک که با تحقیر خفیفی به لبهای او دوخته شده بود جوان انگلیسی سرخ شده نیمه آهسته و با کمی هیجان ادامه داد این نظر مقامات است که همه بهتر می‌بینند بر درست بودنش تاکید کنند ولی به شما بگویم اینجا چیزی پرده پوشی می‌شود و آنگاه به زبانی ساده و صادقانه حقیقت را گفت از سال‌ها پیش وبای هندی گرایش بیشتری به سرایت و گسترش نفوظ خود نشان میدهد. این بیماری که در باطلاقهای گرم دلتای رود گنگ با نفس احریمنی دنیای وحشی کهان جزیره ها که انسان همواره از آن دوری جسته و در نیزارهایش ببر در کمین نشسته پدید آمده و همواره سراسر هندوستان را زیر حجوم مرگ بار خود گرفته از مشرق تا چین و از مغرب تا افغانستان و ایران پیش رفته از جاده های کاروان رو و را تا هشترخان و حتی مسکو با خود برده است ولی در حالی که اروپا از ترس رخنه این شبه هلناک از راه خشکی به خود می‌لرزید، پیش رویش همراه تجار سوری از طریق دریا ادامه یافته. تقریبا به طور همزمان در چندین بندر دریای مدیترانه ظاهر شده در طولان و مالاگا به پیروزی های چشمگیری دست یافته در پالرمو و ناپل در موارد چندی چهره خود را نشان داده بود. و گفتی هیچ خیال ترک کالابریا و پویا را ندارد. شمال شبه جزیره تا کنون مسون مانده بود. ولی در نیمه ماه مهم سال، در ونیز ظرف یک روز، ویبروی های انگیز را در نعش سیاه شده یک کارگر کشتی و زنی سبزی فروش که هر دو تا آخرین رمغ خود را از دست داده بودند، یافتند. این موارد را مخفی نگه داشتند ولی پس از یک هفته شمار آنها به ده نفر رسید به بیست نفر و سی نفر یعنی در مناطق مختلف مردی از روستاهای اتریش که چند روزی برای تفریح به ونیز آمده بود مرده به دیار خود بازگردانده شد با علائمی که جای شبه و تردید باقی نمی‌گذاشت. و این چونین نخستین شایعه ها درباره سرایت بیماری به شهر لاگونا به روزنامه های آلمانی درس کرد مقامات ونیز پاسخ دادند وضع بهداشت شهر هیچگاه بهتر از این نبوده است و دستورات لازم را برای مبارزه صادر کردند ولی احتمالا ارزاق عمومی سبزی گوشت و شیر آلوده شده بود مرگ در پس نقاب رنگآمیزی شده انکار در کوچه پس کوچه های تنگ و باریک دنبال تومه می‌گشت و گرمای پیشرس تابستانی با بالا بردن حرارت آب کانال ها یاریش می‌کرد و حتی به نظر می‌آمد که بیماری تجدید قوا کرده بر سماجت و تأثیر میکروبهایش افزوده است موارد بهبود اندک بود از هر صد بیمار هشتاد نفرشان می مردند. آن هم به چه وضع رقتباری بلا با سبعیت تمام ظاهر می اغلب هم به شکل خطرناکی که به خشک معروف است در این صورت بدن توانایی آن را هم نداشت که انبوه آب جدا شده از شریان های خون را دفع کنند. ظرف چند ساعت بدن بیمار خشک میشد. از خونی که مثل قیر سفت شده بود و او با ناله های خشک و بی صدا جان میداد. گاه اتفاق میافتاد و این بهترین وزن بود که پس از بدهادی نخستین، بیماری به شکل بیهوشی امیق ظاهر می شد که بیمار از آن دیگر سر بلند نمی کرد یا تنها برای چند لحظه بههوش می آمد. از آغاز جوان، اتاقهای مخصوص بیماران ممنوع الملاقات اصپدال سیویکو بی سر و صدا اشغال شده بود. در دو یتیم شهر کم کم جاگیر نمی آمد. و آمد و رفت میان بارانداز تأسیسات بندری و جزیره سنمیشله که گورستان در آن واقع شده بود به طور وحشتناکی شدت یافت ولی ترس از زیان عمومی و ملاحظه نمایشگاه نقاشی که به تازگی در باغهای ملی افتتاح شده بود ملاحظه خسارات فراوانی که در صورت ایجاد وحشت و بدنامی، هتلها و اصناف و بخش برخوردار از جلب سیاهان را تهدید می کرد. قدرت بیشتری در شهر نشان داد تا حقیقت دوستی و احترام به تعهدات بین المللی. قدرتی که مقامات شهر را واداشت، سرسختانه به سیاست سکوت و انکار ادامه داد. بالاترین مقام پزشکی ونیز مردی صدیق و خوشنام با خشم و عصبانیت از مقام خود کنارگیری کرد و شخصی رامتر و بی سر و صدا جایش را گرفت مردم خبر داشتند فشار مقامات بالا احساس ناامنی عمومی و حالت خاصی که مرگ و میرها در شهر پدید آورده بود دست به دست هم داده گونهای سستی اخلاقی به وجود آوردند جلوی غرایز ضد اجتماعی و تمایلات ارزناپذیر رها شده بود که به صورت لجام گسیختگی و بیشرمی و افزایش جنایات خودنمایی می کردند. برخلاف معمول شبها مستان بسیاری در کوچه ها دیده می شدند شرور چنان که گفته میشد، امنیت خیابان را از بین میبردند. دزدی و دستبرد و حتی ارتکاب قتل مرتب تکرار میشد. در دو مورد به اثبات رسیده بود که قربانیان دروغین وبا در واقع به دست اقوام خود مسموم و به دیار عدم فرستاده شده بودند. هرزگی کاسبکارانه هم ابعاد چشمگیر، و بی حد و مرزی به خود می گرفت. که اینجا هرگز دیده نشده و تنها در جنوب کشور و در مشرق زمین معمول بود جوان انگلیسی لب به مطلب را به زبان آورده سخنش را اینگونه به پایان برده بود شما هرچه زودتر از اینجا بروید بهتر خواهد بیش از چند روز به طول نخواهد کشید که مقررات من خروج برقرار شود. آشنباخ گفت: خیلی متشکرم. و از آنجا بیرون رفت. میدان در هوای گرفته بی‌آفتابی بی فرو رفته بود. خارجی‌های بیخبر از همه جا جلوی کافه ها نشسته یا در حالی که کبوترها از سر و کولشان بالا میرفتند جلوی کلیسایی ایستاده بودند و این حیوانها را تماشا می کردند که از لابلای هم بالها را برمی‌آفراشتند و یکدیگر را عقب میزدند تا دانه های ذرت را از های پیش گرفته برچینند. مسافر ما ناآرام و تبالود سرخوش از دانستن حقیقت با تعم تهو در دهان و ترسی خیالنگیز در دل بر برکاشی فرش صحن شکوهمند بالا و پایین می رفت. در اندیشه اقدامی شرافتمندانه بود. او می توانست امشب پس از شام به حضور بانوی مروارید به گردن رسیده سخنانی را خطاب او به زبان آورد که این چونین در ذهن خود می پروران. مادام به این بیگانه اجازه بدهید با توصیه و هشدارش به شما خدمتی بکند که سود شخصی در واقع می مانع آن باشد از اینجا بروید با تاچیو و دخترانتان ونیز آلوده به وباست آنگاه می توانست دست بر سر کسی گذارد که وسیله دست خدایی پر اشوه بود، روی برگرداند و از این گنداب راه فرار در پیش گیرد. ولی او در همان حال حس میکرد کرد که تا چه حد از او بعید است، که جدا بخواهد به چنین اقدامی دست زند. این او را به شهر و دیارش باز می کردند. به خود باز می کردندش. ولی آنکه از خود بیخود شده از چیزی بیش از این نمی حراسد که به خود بازگردد. به یاد امارت سفیدی افتاد با کتیبه هایی که گفتی از درون تاریکی برق می زنند و او با چشم درون در دنیای ارفانیش سیر کرده بود و به یاد آن شکل و شمایل قلندرانه افتاد. که در دل قهرمان روب پیری نهاده ما شوق جوانانه سفر به سرزمین های دور و بیگانه را بیدار کرده بود فکر بازگشت بازگشت به عقل و حشیاری. کار و استادی به اندازه ای او را دچار انزجار کرد که خطوط قیافش از ناراحتی جسمانی در هم شد به تندی و به نجوا با خود گفت باید سکوت کرد و ادامه داد من سکوت خواهم کرد آگاهی به رازدانی خیش به مشارکت در جرم مستش می کرد آنگونه که اندکی شراب سری خسته را مست می کند منظری شهر وبازده و به هم ریخته که همچون برهوتی در برابر دیدگانش ظاهر شده بود، در دلش امیدهایی پدید می امیدهایی در نایافتنی از عقل به دور و شیرین، شیرین و دهشتانگیز آن سعادت ناپایدار که پیشتر خوابش را دید، در مقایسه با این امیدها هیچ بود. در برابر محاسن آشوب، هنر و فضیلت دیگر در نظر او چرزشی داشت. پس سکوت کرد و ماند. آن شب خواب دهشت دید. هر آینه به آن ماجرای روحی و جسمانی را رؤیا به حساب آورد که هرچند، در عمیق خواب و در نهایت وضوح ناوابستگی به دنیای بیداری بر او گذشت باز حضور و آمد و رفت خود را در مکان و در کنار وقایع نمیدید بلکه روحش محل وقوع وقایه بود وقایه ای که از بیرون در آن میتاختند و مقاومت او را که از عمق جان و خردش برمیخواست با قدرت در هم می شکستند، هستیش را در مینوردیدند و تومار زندگیش را با همه مایههای های فکری و فرهنگیش در هم پیچیده لگت مال ترس آغازش بود، ترس و تمنا و این کنجکاوی آمیخته به وحشت که چه در پیش است؟ شب بود و حواس او دوش به زنگ بودند چون از دور صداهای درهمی میآمد. صداهای بلندی ترکیبی از صداهای مختلف صدای خشخش ریزش و تندر فریادی جیخ و زوزهای با صدای او و تمامش را ناله نی در خود محو می کرد که به طور هولانگیزی اندوهناک بود و به طور ای تا مقز استخان نفوز می کرد و تا اندرون تن آدمی از جادویش در امان نبود. ولی او دو کلمه میدانست که آنچه را سر می رسید به نام میخواند خدای بیگانه آتشی پردود روشن شد و او سرزمینی کوهستانی را باز شند. که به محل خانه ییلاغیش شباهت داشت و در آن نور تکپاره که از ارتفاع جنگلها میتابید، در میان تنه درختان و ویرانه با تخت سنگ های خزه بسته انسان و حیوان فرو می دسته دست دست و گله گله و بدنهاشان با آتش و ازدهام و رقص مستانهشان خندق را پر می کرد. زنانی که بر دامن بلند لباس پوستینشان که از کمربند فرو آویخته بود سکندری می خوردند. بر فراز سرهای هنهن کنان به عقب دادهشان دایره می و مشعلهایی شرارانگیز و خنجرهایی لخت می مارهایی زبان بردمیده را از کمر گرفته یا پستانها را به دو دست گرفته جیغ و شیون به راهانداخته بودند مردانی شاخ بر پیشانی پوستی به پیش بسته با تنی پوشیده از مو سر به عقب داده رانها و بازوانشان را به هوا بلند می کردند و تشتهای آهنین به صدا در می آوردند و خشمگین بر تبل می گفتند و در همان حال پسرانی بیمو با چوبهایی پوشیده از برگ بزهایی را که زجکشان به این طرف آن طرف جفتک میانداختند و آنها به شاخهاشان چنگ انداخته بودند برمیانگیختند و نظارگران به وجد آمده فریاد میکشیدند فریادی با اسوات نرم و صدای او در پایانش شیرین و در همان حال وحشی. چنان که هرگز نزیرش دیده نشده بود صدا اینجا تنین میافکند، به هوا تنوره میشد. چنان که گفتی از گوزنهایی برامده و در آن سو کسانی با صداهایی همخان تکرارش میکردند و همچنان که در شادی وحشیانه هم دیگر را به رقص و پرتاب اندامهاشان برمیانگیختند نمیگذاشتند صدا خاموش شود و از این همه ناله بم و جادویی نی میخواست که همه صداها را محو می کرد. ولی حال یعنی این نوا او را هم در جادوی خود میکشید، او را که در برابر ماجرا مقاومت می کرد به جشنشان می که جشن گسیختگی بود و قربانی بیلجام؟ وحشتش عظیم بود و ترسش خاستش قابل ستایش که تا آخر از هستی خود در برابر دشمن بیگانه که دشمن روشنی اندیشه و شعن خرد بود دفاع کند ولی هیاهو و زوزه که به دیوار کوه خورده پیشواک میداد بزرگ و بزرگتر میشد چیرگی میگرفت و هر کراب جنون خود در درمی دودمه های حواس را در نوردیدند بوی گس بزها گرمی بدنهای از نفس افتاده و وزشی که گفتی از آبهای راکت برخواسته و افزون بر اینها بوی دیگری بوی آشنا بوی جراحات و بیماری که به همه جا راه یافته بود به صدای تبل قلبش بنا کرد زدن. سرش دور خود میچرخید خشم سرابهایش را گرفت خشمی که جلوی چشمانش را گرفته بود با شهوتی که حواسش را از کار می انداخت و روحش آرزو میکرد کرد در حلقی رقصان خدا وارد شود نماد رکیک چوبین و قولاسا رخ گشود و قامت بلند کرد پس آنها فریادشان را بیل جام تر سر داد کف بر لب اربده میکشیدند و با غیافه های شهوتناک و دستهای لذتجو لذت جو خنده سر می دادند و شکلک در می آوردند. به تن هم سیخ می زدند و از اندامهاشان خون می مکیدند. ولی مسافر ما هم حال در رؤیایش با آنها بود و در حلقه بندگان خدای بیگانه یعنی آنها خود او بودند که چون بر زمین زیر و رو خزه بسته در پیشگاه خدا در هم آویختنی بی آغاز شد سین دران و خون ریزان خود را بر حیوانها میانداختند و تکه های بخارالود فرو میبلیدند و روح او تعم بی‌ادبی و بدمستی‌های انقراض را میچشید از این خواب آن زده چون بیدار شد، دیگر توان و رمغ از دست داده به خدمت اهریمن درآمده بود. دیگر از نگاه های نظارگر مردم پروایی نداشت. اگر در معرض سوء زنشان قرار میگرفت چه باک؟ آنها هم که در حال عظیمت و فرار بودند، اتاق های ساحلی بسیاری خالی شده بود. در تالار غذاخوری جای مهمانهای بسیاری خالی بود و در شهر به ندرت بیگانهای به چشم میخورد. خورد. گفتی حقیقت پنهان نمانده. با همه تلاش یک پارچه صاحبان منافع بیش از این نمی‌شد جلوه ترس و وحشت همگانی را گرفت. ولی بانوی مروارید به گردن، خواه از آن رو که شایعات به او نرسیده بود. یا مقرور و بیپرواتر از آن بود که از چیزی به حراست با کسانش ماند. تاچیو ماند و بر آنکه گرفتارش شده بود، گاه چنین نمود که شاید فرار از مرگ بتواند آن دنیای مزاحم را از اطرافشان دور کند. و او را با زیبا پسر در آن جزیره تنها گذارد آری چون پیش از ظهر در کنار دریا نگاهش سنگین و بی غید و بند بر قامت محبوب خیره می ماند. و به هنگام فرو شدن روز در کوچه پس کوچه ها که مرگ با شکم برامده درانها در پی تومه میگشت، گشت شعن و وقار به یک سو افکنده به دنبال آن زیبارو میگذاشت. دنیای دنیا یه به چشمش بالنده میآمد و قانون اخلاق رو به همچون همه عاشقان میل دلربایی داشت و همه ترسش از آن بود که مایسر نگردد لباسش را به اجزای شاد و جوانانه می‌آراست جواهر به خود میبست و عطر میزد. هر روز وقت بسیار صرف آرایش خود میکرد و آراسته هیجان زده و ناراحت سر میز غذا حاضر به خاطر جوانی شیرین آنکه دلش را برده بود، حالش از خود و تن روبه پیریش به هم میخورد. دیدن موهای خاکستری و صورت شکستش دوچار شرم و نامیدیش میکرد. میلی در درون خود حس میکرد که به تن خود بپردازد و در شادابیش بکوشد. این بود که بسیار به سراغ سلمانی هتل میرفت. پیشبند مخصوص ببر بر زیر دستهای آراسته آن مرد وراج در صندلیش به عقب تکیه داده با نگاه ناراحت در بحر تصویر خود در آینه رفته بود. با دهان یک بری گفت: سفید شده؟ آن مرد پاسخ داد: یک کمی به خاطر بی توجهی و بی مبالاتی مختصری در امور ظاهری که از مردان بزرگ قابل درک است ولی حتما هم نباید آن را سوتود به خصوص که به این گونه اشخاص توهمات چه در امور طبیعی و چه غیر طبیعی چندان نمی برازد. اگر سخت گیری پاره اشخاص در برابر خدارایی نسبت به دندانهاشان هم اعمال میشد احساس نامبویی که ایجاد میکردند کم نبود. هرچه باشد ما به همان اندازه پیریم که روح و دلمان حس می کند و موی سفید در شرایط خاصی دروغ واقعی تری به حساب میآید تا اصلاحی که با آرایش در آن صورت دهیم. در مورد شما آقای مادرم، باید بگویم رنگ طبیعی مویتان حق شما. اجازه میدهید دهید برش گردانم؟ آشنباخ پرسید چطور؟ در اینجا آن حراف سر مشتریش را با دو گونه آب یکی روشن و دیگری تیره شست که موهایش چنان سیاه شد که در سالهای جوانی بود پس آن را با قیچی مخصوص تابهای ملایمی داد یک قدم به عقب برداشت و به کاری که با موهایش کرده بود نگاه کرد. گفت فقط می‌ماند که پوست صورت را هم کمی ترابت بدهیم. و چون کسی که نمی‌تواند دست بردارد، هرچه بیشتر به کاری بپردازد پردازد، باز بسش نیست. با فعالیتی که مدام شدت میبخشید از یک طرف به طرف دیگر رفته کاری را تمام نکرده به کار دیگری می پرداخت آشنباخ راحت به پشتی تکیه داده از هر گونه مقاومتی ناتوان برعکس از آنچه با او میشد با امید بسیار به حیجان آمده در آینه میدید دید که عبروانش اوسی آشکار تر و یکسانتر به خود میگیرد خطوط چشمانش کشیده می شود برقشان با سایه زدن پلک ها فوزونی می گیرد کمی پایین تر که قهوهی و چرمی شده بود سرخی لطیفی در آن دود لبهایش که تا همین از کم خون بود به رنگ تمشک صورتی بر می دود. چینهای گونه ها و دهان و چروک پای چشم ها به نیروی جوانی باز یافته با کره مف می شود. و با قلب کوبان جوانی دید در اوج شکوفایی آرایشگر بالاخره رضایت داده به شیوه این گونه مردم از آن که به خدمتش پرداخته بود با ادبی لوسانه تشکر کرد بعد در حالی که آخرین دستکاری را در ظاهر آشنباخ صورت میداد گفت فقط یک اصلاح ناچیز حالا سرور من میتوانند بدون هرگونه نگرانی عاشق شوند. آن دلباخته با سروری رؤیایی در دل و ترس و پریشانی در سر از آنجار رفت. کراواتی سرخ به گردن داشت و نوار رنگارنگی گرد کلاه حسیری لب پهنش را گرفته بود.